گلبرگ را ز سنبول مشکین نقاب کن یعنی که رخ به پوش و جهانی خراب کن گلبرگ را ز سنبول مشکین نقاب کن یعنی که رخ به پوش و جهانی خراب کن بفشن عرق ز چهره و اطراف باغ را چون شیشه های دیده ما پرگلاب کن ایام گل و عمر به رفتن شتاب کرد ساقی به دور باده گلگون شتاب کن بکشا به شیوه نرگس پرخواب مست را و از رشت چشم نرگس رهناب خواب کن بوی بنفشه بشنو و ظلف نگار گیر بنگر برنگ لاله و عزم شراب کن زنجا که رسم عادت عاشق کشی توست با دشمنان قدح کش و با ما اطعاب کن همچون حباب دیده به روی قدح گشای وین خانه را قیاس اساس از حباب کن حافظ وسال میتربد از ره دعا یارب رب دعای خسته دلان مستجاب کن